داستان مالک نخود و باغالی یکی بود یکی نم بود تو پالرمو مردی به اسم دانجوانی که آه هم در بساط نداشت زندگی میکرد یه روز که از گشنگی رود بزرگش رود کوچیکش کوچیکشو میخورد از در خونه زد بیرون همینطور که میرفت با خودش میگفت آی سر نوشت ببین چجوری منو برم کردی؟ همون موقع یه دفعه روی زمین یه باقالی دید. دولا شد و برش داشت. نشست روی نرده و همینطور که باقالی رو نگاه میکرد رفت تو فکر و خیال. چه باقالی قشنگی؟ حالا میکارمش توی گلدون. اون وقت یه بوته باقالی با یه عالم قلافای قشنگ در میاد. ها رو خشک میکنم، بعد باغاالییا تو باخشه میکنم و بازم یه عالم غلاف دیگه می گیرم. از اون به بعد تا سه سال یه مزرعه اجاره می کنم و میشم یه تاجر بزرگ. پسر جوون تو فکر و خیال خودش بود که متوجه شد رسیده به بیرون دروازه های شهر سننتنیو یه هم متوجه، یه ردیف انبار شد. زنی جلوی یکی از دران نشسته بود. رفت جلو و بهش گفت خانم، این انبار جاره یه زن جواب داد بعد آقا کی میخواد اجارشون کنه؟ دانجانی جواب داد ارباب من من باید با کی حرف بزنم؟ با این خانومی که این بالا زندگی میکنه باید حرف بزنی. دانجوانی یکم فکر کرد و بعد رفت سراغ یکی از رفیقاش. به رفیقش گفت تو رو خدا یه چیزی بهت میگم که نه نگو. یه دست از لباساتو با یه روز بهم هم بده. رفیقش هم بهش گفت باشه هیچ اشکالی نداره بهت قرض میدم. و دانجوانی یه دست لباس کامل با دستگش و ساعت از دوستش قرض گرفت. بعد رفت سلمونی و صورتش رو اصلاح کرد. سرتاپا نونوار شده بود. و دوباره به دروازه شهر برگشت. باقالی رو هم گذاشته بود تو جیب جلیغش. بعضی وقتا زیر چشمی نگاهی هم بهش مینداخت. وقتی کنار انبارها رسید دوباره اون زن رو دید که همونجا نشسته. بهش گفت خانم عزیز خدمتکار من راجع به اجاره این انبارها از شما سوال کرده بود اون خانم جواب داد بله قربان اومدید اونا رو ببینید بفرمایید تا شما رو ببرم پیش همسر اربابم. دانجانی با سربلندی تمام راه افتاد و با هم پیش صاحب انبارها رفتن خانم انباردار که دانجوانی رو با کلاه و دستکش و زنجیر طلا دید، حسابی تعارفش کرد و با همدیگه شروع کردن به صحبت کردن. گرم حرف زدن بودن که دختر خانم قشنگی اومد توی اتاق. چشمای دانجوانی بعد از دیدن دختر جوان از خوشحالی برق میزد. از خانم انباردار پرسید: فامیلتونه؟ اونم گفت: نه، اون دخترمه. دمه بخته؟ بله که دمه بخته. و کمی بعد هم دان جوانی گفت به نظرم به جای اینکه در مورد انبارها با هم قرار و مدار بذاریم سر موضوع دخترتون باید به نتیجه برسیم. نظر شما چیه سرکار خانوم؟ و خانوم هم جواب داد هر چیزی میتونه پیش بیاد. همون لحظه پدر دختر هم وارد شد. دانجوانی پا شد و تعظیم کرد و گفت من زمیندارم و میخوام هر سیزده انبار شما رو برای انبار کردن یه عالم نخود و باقالی اجاره کنم. اگه ناراحت نمیشین، میخوام از دخترتونم خواستگاری کنم. پدر گفت، خب، اسم شما چیه؟ اسمم دانجوانیه، مالک یه عالم نخود و باقالی. خب دانجانی، 24 ساعت به هم مهلت بده تا بهت جواب بدم. شب که شد، مادر دختره دخترش رو پیش خودش آورد و ازش پرسید که این پسر دانجانی مالک یه عالم نخود و باقالیه. تو رو از ما خاسگاری کرده. دخترم شاد و شنگول بالا گفت. فردای اون روز دانجانی برگشت پیش دوستش و یه دست لباس دیگه هم گرفت و قبل از هر چیز باقالی رو به جیب جلیغه لباس تازهش منتقل کرد. رفت پیش صاحبای انبار و وقتی که جوای بلر رو گرفت از خوشحالی رو پاش بند نبود. با خودش گفت باید عجله کنم چون مشغلم دیگه اجازه نمیده وقتم رو هدر کنم. پدر مادر دختر هم گفتن جناب دانجوانی یه هفته دیگه برای تنظیم عقدنای براتون در نظر بگیریم خوبه؟ دانجانی تمام اون روزها رو به قرض گرفتن لباسهای مختلف گذروند و پدر مادر دخترم فکر میکردند که طرف خیلی پول داره. بالاخره عقدنامه رو امضا کردن و جهاز دختر دو هزار سکه طلای نقد و ملافه و لباس رو کلی وسایر دیگه بود. دانجانی وقتی این های پول جلوی خودش میدید، احساس کرد که آدم دیگه ای شده. شروع کرد به خرچ کردن هدایا به عروس و برای خودش و لباس و هر چیز دیگه ای که به درد پوز دادن بخوره برای خودش تعیم کرد هشت روز بعد از قول و قرار با یه دست لباس قشنگ دامادی و باقالی که توی جیبش بود عخت کردن و بالاخره دانجوانی و همسرش یه زندگی اعیونی رو با هم شروع کرده بودند. مادر عروس که میدید این ریخت و پاش تمومی نداره کم کم حول ورش داشت. یه روز به دامادش گفت کی دخترمو می‌بری زمیناتو بهش نشون بدی؟ دیگه الان فصل برداشته ها. داشت دست و پاش گم می کرد. دیگه نمیدونست چه بحانه ای باید بتراشه. اما فکرشو به کار انداخت. و بعد هم تخم با رو از جیبش در و گفت آهای سر نوشته من بازم باید بهم کمک کنی خلاصه یک هجاوه قشنگ برای عروس و مادر عروس تهیه کرد و گفت حالا دیگه وقتشه باید بریم تا زمین ها رو بهتون نشون بدم شما با کالسکه بیاین منم جلوتر از شما با اسب میام دانجوانی با اسب راه افتاد وقتی چشمش افتاد به زمینی که انگار باب دندونش بود یکی از کشاورزا رو صدا کرد و گفت این دوازده تا سکر رو بگیر و تا دیدی کجاوه با دوتا خانم داره بهت نزدیک میشه اگه ازت پرسیدن که این زمین مال باید بگی مال دانجانی مالک یه آلم نخود و باقالی کشاورزم قبول کرد کجاوه از را رسید مادر دختره از کشاورز پرسید این زمینای درندش مال کیه؟ کشاورزم جواب داد، مال دانجوانی. همون که مالک یه عالم نخود و باقالیه مادر و دختر از خوشحالی نیششون باز شد و به سفر خودشون ادامه دادن. دانجوانی به یه زمین دیگه رسید، باز هم همین موضوع دوباره تکرار شد. دانجوانی آن اومهای 12 سکه‌ای میداد و با باقالی تو جیبش که همه بخت و اقبالش بود راه خودش رو میرفت. خلاصه رسید به جایی که دیگه چیزی برای دیدن نبود. دانجانی با خودش گفت حالا یه مسافرخونه پیدا میکنم و منتظرشون میشم. رو نگاه کرد. که قصر بزرگ دید که جلوی پنجرهش دختر سبز پوش، ایستاده بود دختر جوان گفت آهای آهای من اینجام و بهش علامت داد که بره پیشش دانجوانی وارد قصد شد راهپلههای تمیز و براق رو که میترسید کسی فشون کنه گرفت و بالا رفت دختر سبز اومد به استقبال دانجوانی و تمام چلچراخ ها و فرش ها و دیوارهای طلای تموم ایار رو بهش نشون داد و بهش گفت از این قصد خوشتون میاد دانجوانی گفت مگه میشه خوشم نیاد مرده بیاد اینجا رو ببینه زنده میشه و دختر سبزفروش بهش گفت بیا بیا بالا بیا بریم تا اتاقها رو هم نشون بدم. همه جا پر بود از جواهر و سنگهای قیمتی پرده های زریف چیزایی که دانجوانی خوابشو هم ندیده بود دختر پوش گفت همه اینار رو میبینی همهشون مال توه مواظبشون باش اینام مدارکشونه یه هدیه است که من بهت میدم دانجوانی تعجب کرده بود بهش گفت تو کی هستی اونم گفت من باغالییم با هستم که تو ورش داشتی و تو جیبت نگرش میداری. حالا میخوام برم. دانجوانی میخواست بی افت رو پاهای دختر رو ازش قدردانی کنه. اما دختر سبزفوش آب شده بود و رفته بود تو زمین. ولی اون قصر قشنگ سرجاش بود و مال دانجانی. تا چشم مادر زن دانجوانی به قصر افتاد گفت وای دخترم که چه بخت بزرگی آوردی و به هم گفت پسر جون قصر به این قشنگی داشتی و به همون نمی گفتی خب دیگه می خواستم زدتون کنم و بعد هم اونا رو برد تا قصر رو بهشون نشون بده خودش هم دفعه اولی بود که می اونجا رو ببینه همه جواهرات و مدارک زمین ها رو بهشون نشون داد بعد هم زیر زمین پر از طلا و نقره رو با پارویی که وسطش فرو رفته بود. حتی استبل و کالسکه ها هم بهشون نشون داد. و آخر سرم از فراش ها و خدمتکارها بازدید کردن. برای پدرزنش هم نامه نوشت که هر چی داره بفروشه و اونم بیاد به قصر رو با دانجوانی زندگی کنه. حتی دانجانی انعامی هم برای اون زن مهربونی که جلوی انبار نشسته بود فرستاد.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 همه و همه و همه در کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های های افسانهای صعوتی مهران دوستی،